چون نیست دختر آنکه روداد قرار، چندین زپهی مراد دل رنج مدار، هن تا ننهی بر دل خود چندین بار، بگذاشتن و گذاشتن است آخر کار. جانا می صاف ناموشبش می خور. بر یاد بطان نغز دلکش می خور، می خون از تو را می گوید. خون بر تو حلاق کردم، خوش می خور. دلتنگ شبی یک جوهکی بنگ بخور، با یک منکی باده گلرنگ بخور، صوفی شده ای این نخوری آن نخوری، در خورده تو سنگ است، برو سنگ بخور. دیک کوزگری بدید من در بازار، بر تازگری لگت همیزد بسیار، وانگل به زبان حال بابه می گفت، من همچو تو بودم، مرا نیکودا.